شاهزاده شرور روزگاری شاهزاده ای بود که او را شرور میخوندند او پسر پادشاه حاکم بر بنارس بود شاهزاده همچون ماری به دام افتاده سه تمکار و بیرحم بود و تنها برای اهانت و آسیب رساندن به مردم با اونا سخن میگفت در نظر تمام مردم بیرون و درون کاخ او مثل دیوی که قصد بل ایدنشونو داشت جلوه میکرد روزی شاهزاده برای آبتنی به کنار رودخونه رفت و در اونجا طوفانی عظیم و زیدن گرفت و آسمان رو تاریک کرد. او به صدای بلند خدمتکاراش را فرا خوند و گفت: «منو وسط رودخونه ببرید و بشورید و برگردونید. خدمتکارا اول درمونده بودند که چه کار باید بکنند اما شاهزاده شرور رو بردن میان رودخونه و همه با هم تصمیم به نابودیش گرفتن، بنابراین او رو به وسط آب پرتاب کردند تا آب او را ببره. پیش پادشاه که برگشتن در جواب پورسوجوی او گفتند که طوفان شد و در تاریکی وحشتناکی که همه جا رو پوشونده بود، شاهزاده از برابر دیدگانشون ناپدید شد و احتمالاً از اونا خیلی دور شده. پادشاه بیدرنگ فرمان داد که برن و شاهزاده رو پیدا کنند. چهار دربازی شهر رو باز کردند و مردمانی را به جستجوی او فرستادند. اما هیچ کدوم نتونستن پیداش کنند وقتی تاریکی همه جا رو گرفت شاهزاده تنیه درختی رو وسط آب پیدا کرد و از ترس غرق شدن به اون چسبید و آب رودخونه او رو با خودش برد بالاخره جایی در کناره های رودخونه یه مار و یه موش آبی لونه داشتند. این دو در حیات پیشین خودشون بازرگانانی ثروتمند بودند که در بناره زندگی می کردن. اون که به صورت مار در اومده بود چهل کرور از ثروت خودش رو در جای به خصوصی از ساحل رودخونه چال کرده بود اونم که موش آبی شده بود سی کورور از ثروتش رو در همون محل دفن کرده بود از اونجا که تقیان رود آب رو در خوابگاه ما رو موش آبی انداخته بود، هر دو سراسیمه از سوراخ‌هاشون بیرون اومدن و در عرض رودخانه شنا کردند و به همون تنه درختی رسیدند که شاهزاده بهش چسبیده بود. در این موقع توتی که در ساحل رودخانه در درخت پنبه‌ای که حالا آب اون رو ریشه‌کن کرده بود زندگی میکرد و به هنگام فرار برای نجات جانش خیزابها او را زیر ضربه گرفته بودند. به اونا پیوست به این ترتیب آب هر چهار بی خانمان طوفان زده رو به پایین رودخونه برد تنه درخت در یکی از پیچهای رودخونه شناور موند اونجا دیری بود و پارسای دیر صدای شاهزاده رو که در آج درماندگی فریاد می شنید و فورا به فکر افتاد کاری کنه که این هم جون به در ببره بنابراین در آب شیرجه زد و دستش رو به درخت رسوند و اونو گرفت و با قدرت بسیار به ساحل کشید و شاهزاده رو در کناره رودخونه گذاشت. بعد مارو و موش و توتی رو هم بر زمین گذاشت. بعد اون ستا رو به همراه شاهزاده به کنار آتشی برد که در اجاق دیر می سوخت. اول حیوانا و بعد شاهزاده رو گرم کرد و بعد برای حیوونا غذا آورد و بعد از اون غذایی جلوی شاهزاده گذاشت. شاهزاده از اینکه راهب پیش از او جانوران رو گرم میکرد و به اونا غذا میداد، ناراحت و خشمگین شد و کنشو به دل گرفت. چند روز بعد همشون حالشون خوب شد و نیرو گرفتن و آماده رفتن شدند. اول مار اومد پیش راهب و گفت: پدر، تو به هنگام نیاز به من کمک کردی اگر روزی به کمک احتیاج پیدا کردی به اون نقطه از ساحل رودخونه بیا و صدا بزن مار چهل کرور طلا که اونجا دفن شده مال تو هست بعد موش جستوخیز کنان نزد پارسا اومد و گفت پدر، تو در وقت نیاز به من کمک کردی منم بی چیز نیستم هر وقت به پول نیاز داشتی تنها کاری که باید بکنی اینه که به همون نقطه بیای و فریاد بزنی موش من در اون موقع سی کرور تلام رو بهت میدم آنگاه توتی خداحافظی کرد و گفت پدر من زر و سیمی ندارم که تقدیمت کنم اما اگه روزی به غذا احتیاج پیدا کردی به سرزمینی که من در آن سکونت دارم بیا و صدا بزن توتی من و ملتم کشتارهای برنج خیلی خیلی زیادی داریم که میتونیم بهت بدیم. دست آخر شاهزاده برای خدا حافظی جلو اومد اما او تصمیم گرفته بود که اگه پارسای دیر بدیدنش بیاد او رو بکشه. بنابراین گفت وقتی پادشاه شدم پیش من بیا. من چهار چیز رو که یک راهب بهش نیاز داره یعنی پوشیدنی، خوردنی، محل سکونت و گیاهان دارویی بهت میدم. شاهزاده بعد از گفتن این سخنان به کشورش برگشت و خیلی زود بر تخت پادشاهی نشست با گذشت زمان مرد پارسا بر آن شد که درست پیمانی دوستانش را امتحان کنه بنابراین به کنار رودخانه و به همان نقطه ای رفت که مار در اونجا اقامت داشت و فریاد زد مار مار فورا از سوراخش بیرون خزید و در برابر راهب تو کمر خم شد و گفت زیر خاک اینجا چهل كرور تلا مدفونه اونو بیرون بیار و با خودت ببر راهب پارسا گفت مایه خوشحالیه در وقت نیاز فراموشش نمیکنم خیلی متشکرم سپس موش رو صدا کرد موش هم با شنیدن صدای او بیدرنگ از لانش بیرون جست و سیبیلاش رو به نشانه فرمانبرداری صمیمانه بر خاک مالید و گفت همینجا زیر لونم سی کرور تلا هست اونا رو بیرون بیار و با خودت ببر راهب پارسا از او هم تشکر کرد و بعد برای آزمودن توتی روانه شد. توتی همین که شنید راهب او رو فرامی خونه از بالای درخت خودش پایین پرید و پرسید که آیا او و رفقای توتیش باید از سخراهای هیمالیا براش بره جمعآوری کنند؟ راهب از او سپاسگزاری کرد و قول داد که او و پیشنهادش رو فراموش نکنه. سرانجام مرد پارسا تصمیم گرفت شاهزاده را که الان پادشاه شده بود و در اون لحظه سوار بر فیلی غول پیکر بود در حالی که شمار زیادی از درباریانش در پیش روان بودند و در پایتختش گردش کردند آزمایش کنه همین که چشم شاهزاده بر مرد پارسا افتاد با خودش گفت این مرد اومده تا از من غذا و مسکن تقاضا کنه. باید پیش از اون که فرصت پیدا کنه و به کسی بگه که چطور جون منو نجات داده، او رو از بین ببرم. بنابراین این، ملازمان خودش رو فراخوند و مرد پارسا رو بهشون نشون داد و گفت: فکر میکنم این مرد قصد داره گزندی به من برسونه. و بهشون دستور داد: اونو بگیرید و ببندید و در گوشه به گوشه شهر تازیانش بزنید و پای پیاده تا بیرون شهر ببریدش و در میدون اعدام گردنشو را بزنید و جسدش را به دار بیاویزید غلامان فرمان شاهزاده را به جای آوردند پارسای بیگناه را به بند کشیدند و به میدان اعدام می بردند و تازیانه می‌زدند، اما تنها کلماتی که از او شنیدند این بود که میگفت، چه بهتره که تنه درختی رو نجات بدی تا بعضی از آدم ها رو؟ سرانجام چند مرد دانا از میان رهگذران لحظه ای جلوی غلامان شاه رو گرفتند و از پارسای پیر پرسیدند که مقصودش از این حرفا و سخنان چیه؟ او تمام ماجرا رو که چگونه شاهزاده رو از گردابی که در اون گرفتار شده بود نجات داده باز گفت بیدرنگ تمام مردان دانا و شریف با شنیدن سخنان او فریاد زدند وقتی این آدم ستمگر به بزرگمرد پارسا که جونش را نجات داده اینطوری پاداش میده چطوری میتونه با عدالت بر ما حکومت کنه و بدون این که لحظه ای درنگ کنند همه یک صدا بر پادشاه تبهکار هجوم آوردند او رو زیر ضربه شمشیر گرفتند و جسد بیجانش جانش رو به دریا انداختند سپس اون مرد پارسا را آزاد کردند و مسک کردند و به عنوان فرمان روای خود برگزیدند. مرد پارسا زمانی که بر مردم حکومت می کرد به فکر افتاد که یه بار دیگه مار و موش و توتی رو آزمایش کنه این روزی پیشا پیش صفه بلند قراولانی که همراهش میرفتند به محل سکونت مار رفت و صدا زد مار مار فورا از سوراخش بیرون خزید و سمیمانه در برابر پارسا خم شد و گفت این گنجینه من پادشاه ها لطفا اونو بگیر شاه به همراهانش گفت که چهل کرور طلا رو بگیرند و به اونجا که موش سکنا داشت رفت و فریاد زد موش موش هم به همون شیوه بیرون اومد و سی کرورش رو تسلیم کرد وقتی ملازمان این گنجینه رو هم گرفتند شاه به کنار درختی رفت که توتی در اون سکونت داشت و صدا زد توتی پرنده کنار پاهای شاه فرود اومد و از او پرسید که آیا باید براش برنج بیاره؟ شاه گفت هنوز وقتش نرسیده که ما برنج لازم داشته باشیم بهتره که همگی برگردیم بنابراین همه اونا شاه، مار، موش، توتی با هفتاد کرور طلایی که قراولان با خودشون می بردند به شهر برگشتند شاه دستور داد که طلا رو در خزانه ای که با دقت و احتیاط تمام از اون نگهداری میکردند بگذارند او برای مار یه لوله زرین ساخت تا درش زندگی کنه. موش رو در صندوقچه بلورین و توتی رو در قفسی زرین جای داد. همچنین دستور داد که به اونا هر روز در ظرفهای طلا غذا بدن. ذرت برشته شکرین برای توتی و مار و برنج معطر برای موش، در سایه لطف و مهربانی های شاه هر چهارتن زندگیشون رو در آرامش و دوستی گذروندن.